دوشاگهی یار سفر کرده داد باد من نیز دل به باد دهم هرچه باد باد کارم بدان رسید که هم راز خود کنم هر شام برغ لامه و هر بام داد باد در چین طره تو دل بی حفاظ من هرگز نگفت مسکن معلوف یاد باد امروز قدر پنده عزیزان شناختم یارب روان ناسه ما از تو شاد باد خون شد دلم به یاد تو هرگه که در جمن بند قبای قنچه گل میگو شاد باد از دست رفته بود وجود ضعیف من صبحم به بوی وصل تو جان باز داد باد. حافظ نهاد نیک تو کامت براورد جانها فدای مردم نیکو نهاد با